بسم الله الرحمن الرحيم بحث تقليد والتقليد قبول قول القائل بلا حجته اتبا مياد نجي تقليد دستم چه هست تقليد كي دار لغت از قلاده گرفته شده اسمون گردن بند معنى استلاحي شمياره قبول قول القائل بلا حجه من تفسيري ترجم تعریفی که امام غزالی هم ارائه داده پذیرفتن قول گوینده سخن گوینده بدون حجت بدون که دلیلش رو بدونه فعلا ھذا قبول و قول نبی یسمى تقلیدا بر این اساس پذیرفتن سخن پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ وسلم تقلید نامیده می شود میگه بر اساس این تعریف چون میگه تعریف منطبقه بر این شخص میاد سخن پیغمبر رو میپذیره بدونیم که حجتش رو بدونه ولی خودش این تعریف رو نقض میکنه و واقعا همچنین هست منطق و همه چیز میگه که پذیرفتن سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم تقلید نیست چون ذات سخن پیامبر سخن پیامبر اسلام خودش فی حجت است و این مسئله رو البته خود امام بزرگوار امام جوینی در کتاب اصول بزرگترش یعنی البرهان آورده است و اونجا میگه که وذهب بعضهم إلى أن التقليد قبول قول القائل بلا حجة من تعريف مياره؟ بعد ذلك يقول أنه يكون هذا تعريف إرائه مده لم يشكي سخنة أغنبر والتقليد نومي زيرا كي خودش في نفسه حجة السخنة أغنبر أغنبي إسلام وبعد ذلك من قال و بعض ديگر قفتان در رابطة بالتقليد با التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله در تعريف تقليد چنين گفتند بعضي تقليد پذیرفتن سخن گوينده در حالي که تو نداني از كجا اين سخن را گفته است حجتش رو نداني فان قلنا اگر ما بگوييم ام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا ی مسئله دیگه ای اشاره میکنه. میگه اگر بگوییم که پیامبر اگرامی اسلام صلی الله علیه و که گفته است بر اساس قیاس و اجتهاد بوده است. چون سخنان پیامبر بعضی وحید بودند و بعضی اجتهاد بودند. این با تتبع شریعت با استقرا فهمیده میشه. البته در شروع این سخن همه چیز واضح میگردد که انسان به کتب بزرگتر مراجعه کرده. چون جایی پیش میاد پیانبر اسلام یه سخانی میگوید و صحابی چیزی رو مطرح میکند پیامبر صلی الله علیه وسلم استثناء خیلی میشه مثل مسئله ازخیر نظر میگوید همچنوی سخانان پیامبر از روی اجتهاد بودند در هر حال بحث جالبیست بحث خیلی جالبی میتونه در فقه باشه دسته دس بندی فا این قولنا این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانه یقوله بالقیاس اگر بگوییم که پیامبر گرامی اسلام صلی اللہ و وسلم این سخنش بر اساس قیاس بوده است فیجوز ایوسا ما قبول قولهی تقریده در این حالت جائز است که پذیرفتن سخنش تقلید نامیده شد البته در این صورت هم باز هم یعنی این دستبندی درست اما باز هم نمیشه تقلیدش نامید زیرا پیامبر بر اسلام اجتهادی که کرده است اگر بر اساس وحی نمیبود باز هم وحی میومد و اصلاحش می‌کرد. لذا روی این مسئله نقاش هست ولی چیز جالبی در کل امام حرمین میگویند اگر بگوییم که پیامبر گرامی اسلام بر اساس قیاس یا بر اساس این سخنش را گفته است جائز است که قبول قولش تقلید نامیده شود این بود از بحث تقلید که خیلی مختصر امام بزرگوار آورده بود اما در رابطه با اینکه واقعا تقلید جائز است یا نه هیچ ای رو اشاره نکردم. و من هم از خودم هیچ چی نمیم بگذارید اینجا اون نظر اصولیینی رو که دکتر زیدان رحمت الله علیه در کتاب وجیزش آورده است نقل کنم. می فرماید که در جایز بودن تقلید اختلاف کردند گروهی میگوید که تقلید مطلقاً جایز نیست چه بر اونی که توانایی اجتاد دارد چه اونی که ندارد و گروهی دیگر گفتند تقلید مطلقا جائز است چه اونی که توانه اجتهاد دارد چه اونی که ندارد گروه دیگر تفصیل قائل شدند در حق کسی که اجتهاد نمیتواند تواند مجتهد نیست جایز است و برای کسی که مجتهد هست و توانه اجتهاد دارد جایز نیست و در آخر می گوید است قول راجه و واقعا است قول راجه عدله چونین میگویند در رابطه با تقلید مذاهب سخنانی بسیار زیبا و طلایی دارند دکتر زیدان میفرماد که در رابطه با تقلید مذاهب نکات خیلی جالبی رو میگه در رابطه با مذاهب میفرماید که مذاهب اسلامی روشهایی فقهی برای نصوص برای تفسیس برای تفسیره و استنباط احکام از شریعت شرعی جدید نیستند چیزی جز از اسلام نیستند و میفرماید شریعت اسلامی بزرگتر و وسیتر از هر مذهبیست مذهبی است و هیچ مذهبی وسیعتر از شریعت اسلام نیست شریعت اسلام بر هر مذهبی حجت است و هیچ مذهبی بر شریعت اسلام حجت نیست آن چیزی که اجازه می‌دهد به اتباع این مذاهب، این هست که مذاهب مزنه شناساندن احکامات شرعی برای پیروانشان هستند مذاهب مزنه شناساندن احکام شرعی هستند مزنه این هستند که حکم نازل شده الله متعال در قرآن و سنت به پیروانشون معرفی می کند می لذا زمانی که مشخص شد فلان مذهب در فلان مسئله خطا کرده بود و ثواب در مذهب دیگه است به شکل کامل مشخص شد که ثواب در مذهب دیگر است. اینجا لازم است که پیرو فلان مذهب نظریه مذهب دیگر را بپذیرد قول ثواب رو قول ارجه را بپذیرد بسیار زیبا و تلایی و ادامه میدهد جائز است برای پیرو مذهبی خاص که در بعضی از مسائل از مذهب دیگر پیروی کند و هیچ الزامی به پایبندی به تمام اجتهادات این مذهب ندارد البته از روی هوا و حوث نه نکه برای ببیند نظریات مذاهب دیگه آسان ترد بلکه بر اساس دلیل این خیلی مهم هست خیلی مهم هست نظریات مذاهب دیگر را بپذیرد اما بر اساس دلیل در اساس هواس فرسیو هر کجا که ساده تر بود طبق بیلغش بود اوجا بمینند و اضافت می‌دهد که بر مقلد است که خودش رو از تعصب لکوحیده برای مذهب پاک گرداند زیرا که مذاهب تجزیه‌ای از اسلام نیستند و مذاهب ادیانی نیستند که اسلام را منسوخ کرده باشند بلکه وجوه و اشکالی تفسیری برای شریعت اسلام و فهم شریعت اسلام هستند و روزنه هستند که که انسان مکلف از اون روزنه اسلام رو می بلکه مدارسی هستند که اسلام رو شروع تفسیر کردند و, و در شماره هفتم میفرماید که ما هرگز با اختلافاتی که در مذاهب وجود دارد، به تمرین آن بیاید زیرا اختلاف در فهم و در استنباط شریعت عمیق است عادی و طبیعی از لوازم عقل بشری است قطعا این اختلاف پیش میاد لذا ما به خاطر اختلافاتی که در مذاهب پیش میادن هرگز نباید به تمرین بیایید لذا عقل ها و درکها و ها با هم دیگه اختلاف دارند در نتیجه استنباط و فهم ها مختلف میشود. و ما این اختلاف علمی فقهی رو یک سرمایه بزرگ فقهی می‌دانی و سبب عزتش می‌دانی و یکی از دلایل رشد فقهش میدونی و یکی از دلایل وسعت تفکر فقهای بزرگوار بود اینو میدونی واقعا بود وظیفه ای رو که داشتند جهت خدمت شریعت اسلام انجامش دادند و در آخر نقطه بسیار ضروری میفرماید و در آخر میفرماید برماست که قدر و منزلت مجتهدین این مذاهب مختلف رو بدونیم اونا رو احترام بکنیم مؤدبانه با اونها برخورد کنیم و برای آنها دعا کنی. رحمت الله علیه جمعیه و معتقد باشیم که مجتهدین مذاهب چه مذاهب اربعه و چون مذاهب دیگی که در طول تاریخ اسلام مندرس شدن اونا رو معجور بدونیم در اجتهادات شد چه زمانی که اجتهادشون اصابت کرده است چه زمانی که اجتهادشون به خطا رفته است در هر دو صورت در حدیث صحیح اومده است که مجتهد چه اجتهادش مطابق با ان چه که واقع هست واقعیت هست باشد چه به خطا رفته باشد معجور هست و ما هم عملا ما مسلمانان باید چنین باشیم مجتهد رو معجور بتونیم در هر دو صورت مجتهد اجر برده است. فرقشید است که اگر اجتهادش درست رو طبق واقع بوده است. دو عجر برده است و اگر به خطا رفته است یک عجر برده است. ولی در هر حال مجتهد معجور هست لوکاتی بسیار زرین و طلایی رو دکتر زیداد در آخر کتاب الوجیزش در رابطه با بحث تقلید آورده بود موفق و پیروز باشید